جناب استاد فرمودند که اگر لطفا نظرتان را نسبت به بیت زیل بیان فرمایید جناب اقای آهنگر از دسفور اگر شاه را شاه بودی پدر به سر برنهادی مرا تاج زر این مطلب واقعیت دارد که کودکی آن را در بازار میخواند فردوسی از قایت هرمان آهی کشید و بیهوش شد و روحش از قالب جسم پرواز کرد چنین داستان‌های ننگالود رو برای نماد فرهنگ ایران فیدوسی ساختن فیدوسی اصلا اون شاه شمار نمی آورد یک محاسبه خیلی ساده این که شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسید وقتی که در سال 400 هجری به پایان رسید مفهوم میشینی که 670 آغاز شده و در سال 670 محمود کودک 11 ساله بود چرا ما خرد خودمون رو به کار نمیگیریم یعنی نه اینکه مردم ایران بلکه کسانی که نامشون استادم هست اونا هم همین اشتباه رو میکنن فردوسی 19 سال بود از سوردن شاهنامه تا محمود شده پادشاه شده امیر بعد در همون آغاز بهش میگه که ستم باید بر جان و او ما و سال چرا برای که, برای که محمود حامی فردوسی رو کشت بلافاصله بی درنگ کشت ما این فردوسی رو نخوندیم خوندیم نمیبینیم نمی میشناویم نمی استادانمون هم نمیشناون که گفت که بدین نامه چون ده بردم فراز یکی پهلوان بود گردن فراز جوان بود و از تخمه پهلوان یعنی پسر امی ابو منصور بود این امیر منصور بود جوان بود و از تخمه پهلوان خردمند و بیدار و روشند روان مرا گفت که از من چه باید همی که جانت سخن بر همی ببینید روشن داره میگه امیر منصور منو یاوری مالی کرده به چیزی که باشد مرا را دسترست برارم نیارم نیازت بکست همین داشتم چون یکی تازه سیب یعنی من نگهبانی میکرد مثل سیب تازه که از باد بر من نیاید نهید چونان نام برگوم شد از انجمن چون از باد سر صحیح سهی در چمن نزوم مرده بینم نزنده نشان به دست نهنگان و مردم کشان نهنگان و مردم کشان جلات ها توش خیمای بوده که مردم رو شکنجه میکردن یا میکشتن از بین میبردن جالب اینه که کسی کسی پنج سال روشانم داره کارمونو کتاباش به چاپ پونز هم رسیده و من نامشی نمیبرم در یک کتابی به نام سر و سایف گفته که ما این امیر منصور رو نمیشناسیم چطور ممکنه که شما بخواید در آب سخنرانی بکنید ندونید که آب از دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن ترکیب شده اگر همچی چیزین رو حق نداری درباره آب صحبت بکنید با شما باید بدونید که امیر منصور کیه امیر منصور پسر که یک کمی تاریخ بخونید اینا همه شرح حال امیر منصور در تاریخ گردیزی که در همو زمان قزنیان بوده اومده کاملا اومده می بینیم که امیر منصور ما رو در جنگ‌هایی که بین طاهش شده دیلمیان رخ در نیشابور گرفتند و بیگنا هم بود در جنگ هم شرکت نداشت. آوردن به بخارا روز سوار و گاوش کردن برکه توهینش کنند بردن به شهر بخارا. بعد از مدتی که در شهر بخارا بود سبکتکین غلام درم خریده سامانیان که به ده درم خریده بودن بعد بهش سرداری ایران داده بودن. این اشتباهات بزرگ سامانیان در نیمه دوم خ... دوران زندگیشون که آوردن این درم خریده ها رو و بر سر مردمی رو مسلط کردن این سبه تکین امیر منصور رو و دواتی رو از چیز میخواد از زندان بحارا میخواد که به زندان گردیز میاره چرا؟ برای که شکنجه بیشتر بکنه کنه حتما. برای که اگر زندان کن اونجا هم زندان هست امیر منصور رو آوردن به گردیز بر باز در تاریخ می‌خونیم که محمود در 38 به امارات رسید اما در تاریخ گردیزی که تو دستگاه خودشون نوشته شده میگه که در زیغده 389 به امیری خورسان رسید محمود از طرفی در امیر منصور میگه که او را در زیغده 389 در زندان گردیز بکشتند یعنی چی؟ این تو خبر چه معنی داره؟ یعنی محمود تا اومد حامی فردوسی ما رو کشت حامی فرهنگ ایران رو کشت نم گفت با کسانی که این توریکلو نمیخوانن همین توریت دارن داوری میکنن از آبیات افسوده و میخوان بگن که فردوسی محمود مهت کرده فردوسی میگه ستم بود بر جان او میگه شود بنده بیونر شهریار اینا رو نمیخونن این نمیخوانن که گفت که بدین نامه چون دست بردم فراخوزه که پهلوان بود کردم فراخوز رو گفت که از من چه باید همی من متاسفم اینا رو گفتم من یکی بار گفتم باز دوباره داره تکرار میشه عیب نداره شنوندگان ایرانی بشنوند بدونید ای ایرانیان که نماد فرهنگ و عزت و آبرو و شرف شما فردوسی برای پول شاهنامه رو نسروده. میبینید که خود, خود فردوسی در آغاز میگه که شهرم یکی به شهر همیتی محربان دوست بود که گویی که با من به یک پوست بود. مرا گفت که از من چه باید؟ مرا گفت خوب با من دین رای تو. به نیکی خرا مگر پای تو. گشاغد زبان و جوانیت هست. سخن گفتن پهلوانیت هست. شوی نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد مهان آبروی. این مهان کی هستن؟ نیاکانه. میگه که من برای این کار نزد نیاکان خودم بزرگان ایران آبروی میگیرم. در پایان شاهنامه میگه که هران کسی که دارد و رودین، پس از مرگ برمن کند آفرین یعنی برای آیندگان. فردوسی برای... و نیاکان خودش و برای آیندگان ایرانی سروده ننگ و درد و نفرین بر اون کسانی بود که فکر میکنن که پترسی از من اون عبیات هم همه احسوده است اگر مادر شاه بانو بودی از تاب زانو رو همانو که شهر نانوازاده است یک بار از من پرسید کدام شما نژاد محمود رو می‌برید بالا کاش که این نانوازاده بود برای که سبوکتکین روز یعنی سبکتکین رو به 10 درهم خریده بودن در یک کتابی به نام درخت عثوریک هست که عدبیات مردمیه در اونجا بین بوز و درخت, درخت خورما با هم در حقیقت یک گفتار در حقیقت ای رخ میده که بوز در پایان این سخنه میگه میگه که هرکس که بخواهد که بوز بخره تا ده درم نداشه برای خرید و نمیتونه ازی بشه اما خورما رو کودکان به دو پشیز میخرن و دانش رو میریزن تو خواک ده درم قیمت یک بوز یعنی ده درم قیمت سبکتکین بوده و فیدوسی که نماد عزت و شرف ویانی است میاد فرزند او رو اصلا تو با تاریخ هم مقایصه که نمیخور نمی چیزی. چیزیه نوزده سال از ش... سرای شانومو گذشته تا محمود به امیری نما... یک معاید دیگه ای که برای این کار داریم شما حتما کتاب تاریخ بزرگ به حقیری خوندید که تا تاریخ یک بزرگترین تاریخ روزنگار جهانه در یک بخش از تاریخ بیهقی میبینیم که کلیه مدهان محمود رو نام میبره و زمینن از هر کدوم هم یه قصیده میاره نام فردوسی در بین نیست میدونید چرا؟ برای که در روز نمیتونستن دروغ بگن اون فردوسی زنده بود محمود هم زنده بود و همه ایرانیان میدونستن که فردوسی او رو در شمار انسان نیورده و فردوسی او رو که کشنده در حقیقت حامی فرهنگ ایران امیر منصور روانشاد بوده او رو نفرین میکنه این خب ایرانیان در روز میدونستن دیگه من اینو بارها در جلسات گفتم ببینید شما اگر ما با هم داریم سخن میگیم و در موقعی که چیز پخش میشه موسیقی پخش میشه یک برای شما یک پیامک برسه شما اون پیامک رو بخونید و در اون پنامک نویشه بشه که فریدون جنیدی که قرار بود بیاد به رادیو این پین راه تصادف کرد مرت. شما باور نمی کنید برای که من دارید می بینیم. بله همینطور. اما اگر شب بتونید این پنامک بشه میتونید باور کنید. بله. برای فردوسی هم همطور شد. در وقتی که خودش بود کسی جرد نداشه این سخن رو بگه. ولی وقتی روان فردوسی پرواز کرد محمود هم به درک رفت اون وقت این این ا در زمان محئودم نبودین در زمان موجود شد من این عمل رو محاسبه کردم. حتی از شیوه اشعای که افزود شده به شنامه درآوردم که اینا پنج نفر بودن مثلا شما اببیاتتی که به عنوان اسکن در اومده سوش اینا رو مقایسه کنید می به هیچ بش با بیات مثلا پادششاهایی که خصو با هم دیگه سازکار نیست یعنی نشون دیگه گوینده کسی دیگه ای بوده. خب این کار رو سی سال بعد کردم. و این کار هزار سال بعد وراسته شد من این کار رو کردم. این افتخار و بزرگ رو روان و فردوسی به من داد همه اینا رو در این کتاب آوردم شما میتونید بخونید ببینید عبیاتی که ریز آوردم اینا همه افراده هاست و, و منطقه در زیر همه رو شهر دادن. به چه دلیل؟ عبیاتی که درشت ازان فردوسی شما یه وقت میبینید که سی بیت ریز هست و اون بیت درشت قبلی به بیت درشت بعدی کاملا هم بخورد و پیوندش معلومه رو آوردم. همین کارال کردم بخونیم و باید داوری کنیم بله و به نظر من این عجیبه که باود این همه عبیات الهاقی به شاهنامه باز هم شاهنامه اون ارزش واقعی خودش رو داره از دست باز هم در اوج خورشید گفته فدوسی و خورشید داستانهای های نکان ما بدونید بله. یعنی نش... نمیشه صورت خورشید و گل آلو نمی با قبر نمیشه بله ابر میاد میره بله. اینطوره خب یه موسیقی میشنویم، باز هم دخدمتخواهییم. Thank you. موافق باشید دنبالی داستان رو بله دا بکنید بله. سورا پخواهش کرد که همان و بارمان و سپاه توران به خاطر من آمدن و حکم که من گشته میشم اونا دیگه آسیب نبینم نشست از برای رخش رستم چو گرد پر از خون رخ و لب پر از باد سرد بیا اومد به پیش سپخ با خروش دل از کبه خیش با درد و جوش که دیدند ایرانیان رو به همه همه بر برخاک روی یعنی ستاشی که از که پهلبان رو زنده میبینن چوزانگونه دیدنش پرخاک سر دریده بر و جامه، خسته جگر به پرسش گرفتن که کار چیست را دل بدین گونه از بحر کیست به گفتان شگفتی که خود کرده بود گرامی پسر را بیهازرده بود همه برگرفتند با او خروش، نموندان زمان با سپهدار توش، چون این گفت با سرفرازان که من نه دل دارم امروز گویی نه تن، شما جنگ توران مجویید کس. همین بعد که من کردم امروز، بس، یکی دشنه بگرفتن به درست که از تن سر سرخیش پست، دو گفت گودرز که چه سود که از روی گیتی براری دود، گودرز ره. در اون زمان رئیس انجمن مهیستان ایران بوده. تو بر خیشتن کرد کنی صد کزند چه آسانی آید بدان ارجمند. اگر ماند او را گیتی زمان، بماند. تو بیرنج با او بمان. اگر از این جهان آن جوان به بگیتی نگه کن که جاوی کیست. شکاریم یک همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. به در اشتان زمان پهلوان که زیدر بر زود روشن روان، تیام میزه من پیش کاووس بر به که ما را چه آمد به سر، به دشنه جگرگاه و پور دلیر دریدم که رستم نمانه دیر، گرد هیچ یاد است کردار من یکی رنجه کن دل به تیمار من، از آن نوش دارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تندرست، به نزدیک من با یکی جامعه می سزدگر فرستی همکنون به پری مگر کو به وقت تو بهتر شود چون من پیش تخت تو کهتر شود به دو گفت خوی بد شهریار است هنزل همیشه به ببار گودرز میگه چون کابوس توند و اندک بوده بارها در شاهنامه میبینیم که همی بینم از اندر جهان تاج و تخت بزرگان و شاهان بیدار وقت چو کامو هم در جهان ندیده کسی از که مهان یک اندیشه او همی مغز نیست گویی و سرچند در مغز نیست چو دیوانگان است بیهوش و رای به هر باد بادکاییت بجنبت زجار این گفتار گودرزه در انجمن میستان ایران یعنی کابوس این کارا را زیاد کرده از این کار زیاد کرده خب حالا بهش که خوی بد شهریار درختی سنزل همیشه به ببار. تو را رفت باید به گوی که روشن کنی جان گوی گوه بیلتن سرسوی راه کرد کس آمد پسش زود آگاه کرد که سخرا شد جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نکاخ پدر جست و برزد یکی سرد باد به و مشکن به هم برناد. پیهوده شد از عصف رستم چه باد به جای کلخ خاک برسناد. همین گفت زاری نبرده جوان. سرف راز و از تخمی پهلوان اینجا بود و نون جمعه یعنی پهلوانان. نبیند چطو نیز خورشید و ماه، نه خود و نجوشند، نه, نه تخت و کلاه، نبیری جهاندار، سام سوار سوی مادر از تخمه نامدار، بریدند و دستم سزاوار هست، جز از خاک تیره، مبادم نشست. کدامین پدر هرگز این کار کرد، سزاوار مکنون به گفتار سرد، بگیتی که کشته از فرزند را، دلیل و جوان و خردمند را. نکوهش فراوان کند زال زر همان نیز رو پرهنر بدین کار پوزش چه پیش آورم که دلشان بگفت آور خیش آورم چه گوید گردان و گردن کشان چوزی انسان شود نزد ایشان نشان چه گویم چه آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را پدرشان گیران پهلوان یعنی پدر تحمینه چه گوید بدان پاک دخته جوان بر این تخمه سام نفرین کنند، همه نام من پیر بیدین کنند، که دانست که این که عرشمند به این سال گرده اچو سر بلند، به جنگ آیدش رایو، ساغذت سپاه به من بر کند روز روشن، سیاه به پرد سرای آتش اندر زدند، همه لشکرش خاک بر سر زدند، همه پهلوانان و کابوس شاخ نشستند در خاک با او براه، زبان بزرگون پر از پند بود، تهمتن درد از در بند بود، از در یعنی شایسته. برستم چون این گفت، کاووس کی که از کوه البرز تا برگ نی همی برد خواهد شکردان سپر، نباید فکندن بر این خاک میر یکی زود سازد، یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر، تو دل را بدین رفته خفصند کن. همه گوش سوی خردمند کن اگر آسمان بر زمین برزنی اگر آتشن در زمین درزنی نیاری همون رفت را باز جای روانش که شد به دیگر سرای این اندیشه ایران باستان بوده که روان سه روز پس از مرگ پیرامون تن هست و بعد میپیونده به همه روانان یعنی به همه روانان در گرشی دیگه میپیونده میگه روانش که شد به دیگر سرای یعنی با پیران و کوهن در گذشته با هم همراه شد زمان برانگیختش با سپاه که ایدر به دست تو گربت تباه. چه سازی و درمان این کار چیست برین رفته تا چند خواهی به بدو گفت رستم که او خود گذشت نشسته از همان بدین پندشت زتوران سرانند و چندیز چین از ایشان به دلدر مداره ایچکین، زواره صفح را گذارد به راه، به نیروی یزدان و فرمانشا گذارانه بگذراند به تو گفت شاهی گب نامجوی از این رزم اندو خطامت به روی، دل منز درد تو شد پرز درد، نخواهم از ایشان همی یاد کرد، یعنی به تو رانیانده کار ندارم. بفرمود فرمود کابوس خوشید فرق که باشد زواره بدین راه بر. وزان جایگه شاه لشکر براند به ایران خرامید و رستن بماند. بدان تا زواره بیاید زرا به دو آگهی آور از آن سپاه پس آن گست روی کشید که آگاهی او به دستان رسید. همه سیستان پیش باز آمدن به درد و برنج دراز آمدن. چو تابوت را دید دستان سام، فرود آمد از اسب زرین ستام، تهمتن پیاده همی رفت پیش دریده همه جامعه، دل کرده ریش، گشاده گردان سر و سر کمر همه پیش تابوت پرخو سر، چه آمد تهمتن به ایوان خیش، خروشید و تابوت بنهاد پیش، از اون میخ برکند و بکشاد، سر کفن زو زدا کرد پیش پدر محان جهان، جامه کردند چاک و عبرندر آمد سر گرد و خاک. از این پنجره محتاب و حالا خصوص جناب ترجان یه سوال داشتم از خدمتشون میخواستم بپرسم که آیا منبعی هست که از شاهنامه که برای بچه ها نوشته شده باشه و بشه اونها رو از اون طریق با شاهنامه آشنا کرد چون خب شاهنامه برای بچه هایستان دبستان خیلی سنگین هست خوندنش خواستم بکرسم بیرم اصلا بنیاد نجا بود در این رابطه فعالیتی انجام دادم که کتاب رو در حد بچه های مقداری ساده نویسی بکنند را بتونیم نسل جدید رو از اون طریقه اش آشنا کنیم سپاسگزارم گذارم نیلو پر هستم از بند عباس بر نیلوفر و امواج نیلگون دریای پارس من بیشتر از سی سال پیش داستان ها رستن رو به یازده قسمت کردم و هر قسمت رو جدا جدا نوشتیم و جریان بسیار به درازه کشید بعد از بستی ایک سال این داستان ها رو چاپ کردیم و به زودی هم به پایان رسید چاپ اون هم به پایان رسید چاپ سوم رو بر پای ویرایش جدیدی شاهنامه مشغول هستیم من امیدوارم که تا یازده هم تا نوروز امسال به دست فرزندان ایران برسه و شما هم بتونید که فرزندان ایران رو با افتخارات بزرگ ایران باستان آشنا خیر آ و نباشید. از این استاد بزرگوار و واقعا خوب بپرسید به چه دلیل جیب رالف چش میخواند؟ آیا این افزده است یا دلیلی دارد؟ با سپاس و تشکر از همه شما خوبان و عزیزانی که در رادیو فرهنگ زحمت این کشید و این برنامه خوبو برای ما تدارک خوبم. بر شما چنین پاجنام یعنی لقبی برای گیف من نمیشناسم اینو اگر کسانی هستند که چنین چیزی رو گفتند خودشون گفتند گیف یک پهلوان بزرگ ایران بود پسر گودرز که رئیس انجمن محیستان ایران بود گیف پهلوان لورستان و بختیاری و جنفشان ایران بود و خیلی در نبردها بهاری ایرانیان اومد روانش شد. عرض سلام، و امواشی خدمت تمام جوانان و محترم، می‌خواستم سوال بکنم بجز پهلوانان باستان جی گودرز فرامرد بیژن، آیا پهلوان دیگه منتسب به قوم بختیاری هست؟ قوم لور یا خیر؟ سپاسگزارم. به بخیر از اهواز تماس میگیرم جلیلی هستم. خیلی ممنونم خداویش شما. بر شما ساد باشید ما که چنگ بزنیم به یکی از این ریشه‌های های این درخت تناور بزرگ شانامه به همه اون درخت و به همه شاهنامه پیوسته میشیم گیف فرزند گودرز گودرز فرزند کشباد کشباد کباد کباد فرزند اه، کابی آهنگره از این افتخار بالاتر نیست و به نظر من همه از کافیست که بختیاری و لورستان مجادتون به کابی آهنگر برسیم بله ممنونیم استاد از پاسخهای شما ساعت 22 و 39 دقیقه و حالا شد 22 و 40 دقیقه از شبکه فرهنگ با برنامه پنجیرهای روبه محتاب در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت جناب استاد دکتر فریدون جنیدی که با فساحت هرچه تمام در شاهنامه صحبت می کنند و من شخصا مجبود صحبت ایشون شدم جناب استاد یک پرسیشی کردنی که از شنوندگان عزیز پیام کوتاهی بر دادن با این مضمون که چرا شما با همه ایرانشناسان غربی مخالف هستید و ایشون معتقدند که ما ایران وارسته و پاکنیتی هم که قصدشون فقط تحقیق و تطبب بوده داشتیم، من فکرم که جلسی پیش این رو پاسخ دادم با این حال باز پاسخ میدم من همواره از شخصی به نام هارولد والتر ب... والتر هارولد بیلی که رئیس انجامن فقال فغول... انگلستان بود سترش کردم برای که در یکی از کتاب خودش نوشته که ما انگلیسی ها که اگر بخوایم زبان مادری خیش رو نیک بیاموزیم باید آگاهی از کت... کتیبه های خوب خوسی بستان به دست بیاوریم این شخص گیریس انجمن فقولغه انگلیسیون بود پس از اینکه کتاب پوزور کشو که نویش که نشون داد که زبان انگلیسی در حقیقت ریشه هاش در ایران هست خود همین دانشمندانی که این چهنبنده عزیز ازشون داره دفاع میکنه همه اونو رو به قول معروف بالکات کردن و کتابشو رو از بین بردن جز چند نسخه معدود از اون کتاب باقی نمونده چطور وقتی که اونا با دشمنی به ما نگاه میکنن و برای سود خودشون و در حقیقت شش شکستگی ما دارن کار میکنم ما اونا رو ستایش بکنیم من هفته پیش از اینگلز صحبت کردم اینگلز وقتی که با مارکس داشتن آیده‌ی خودشون رو گسترش می میدادن یه نامه‌ای نوشته من اون نامه رو چاپ کردم در کتاب کارنامه ابن سینا در بخش ابن سینا و زبان فارسی در اونجا من میگم که اینگلز به مارکس میگه که من چند هفته است که مشغول زبان شیرین و زیبای فارسی شدم و برای کسی که نامشو بیاد ندارم که رئیس اتحادی کارگران آمریکا بوده برای اون متصف که اگر میدونست که زبان فارسی چی هست اون زبان میتونست که جامعه کارگران و جهان رو به هم نزدیک بکنه یعنی زبان ملی بشه این انگلز گفته ولی شما ببینید که روسیه پس از این که رژیم کمونیستی و پذیرفت بزرگترین حمایت رو از این زبان اسپرانتو کردن برای که جلو زبان فارسی بگیرن اینها در یک اتحاد ناخجسته در هر زمان میخوان که به ایران حمله کنند برای که از ایران میتستن و وحشت حراس دارن و گفتارهای دروغ ناراست به هم میپیوندن و نه همشون اون کسانی که خوب هستن بنده سترایش میکنن ماله. اون کسانی که عضو این سازمان اگر که ترتیبی افتاده هستن که بعد ایران رو به کوبا و اون‌ها رو برای ما نگازیم بولسر برامو ایرانیان که ما خودمون سر این گنج نشسته باشیم در از دیگران بکنیم هم که همه اون‌ها خوب همه اون‌ها فلیش استفاد ما خودمون باید برخیزیم خودمون ببینیم نیاکانمون کی بودن و هیچ دستم استاد اندازه‌ای ما بود ما باید این کار بکنیم و ما ماز. ماز باید باید. اگر نکنیم سر شکستگی برامون بله. و چیزی که الان فرنگی ما رو گرفته بلکه همه استادان ما رو کردن به غرب ببینن. غرب در حضور چی میگه خودتون باید تطبیق کنید خودتون ببینید نیاکانتون چی بودن این کاری که در بنیاد نهج داره میشه درود به اون کسانی که بی نظر خواستن برای ایران کار بکنن در جهان غرب و واقعا نفرین بر اون کسانی که سازمان یافته دارن علیه ایران کار میکنن این بلد. این به این ترتیب فکر میکنم که این شهر بنده شده باشه باز ممنون از توضیحات شما من یک پرانتز کوتاه باز بکنم و خدمت شنوندگان عزیز که سوال کردند از جناب آقای هدایتی که چرا ایشون امشب تشریف نداشتند خدمت شما عرض کنم که این مشکلی برای ایشون پیش اومده مادر ایشون کسالت دارند و خب ایشون هم در حال پرستاری از مادرشون هستند که امیدواریم و دعا میکنیم هر چه زودتر مادر ایشون صحت و سلامت خودشون رو باز بیابند و آقای هدایتی باز هم در این برنامه حضور داشته باشه جناب استاد یک پرسشی هست اینجا که بعضی از منتقدان و شاهنامه پژوهان حالا تلویه هم منتقدن که بعضی از صحنه‌های های صحنه‌هایی هایی که فردوسی توصیف می‌کنه در برخی از داستان‌های های شاهنامه اتناب داره یعنی ضروری نبوده که حتما این توصیفات وجود داشته باشه برای مثال مثلا سودابه وقتی که سیاوش رو به بزم خودش دعوت میکنه یا سیاوش یا سیاوش، یا سیاووخش یا سیاووخش بله فردوسی این بزم رو به این شکل شهر میکنه شبستان بهشتی بوداراسته پر از هوریان و پر از هوریان و پرخاسته سیاوش چون در شبستان رسید یکی تخت ذرین رخشنده دید بران تخت سودابه ماه روی به سان بهشتی پر از رنگ و بوی من این که معتقدم خجاس... اتناب نداره این کاملا این توصیف ضروری اگر بوده اگر سه اتخانه. بیت مطلب رو گفته. وارد شد و اونجای بهشت آراسته بود پر از رامش و پر از خواسته و و هم نشسته بالا تخت مانند بهشت. و حتی اصد نکنی کنم ضروریه اصلا اگر, اگر کسانی این نظر دارن مطمئن باشند که در بخش های به شاهنامه این کار اتفاق میافته گفت... اما در گفتار خود فردوسی در حقیقت ساده ترین, ترین کلام از آن فردوسی است بلاغت چو با دانش هایت فراز بلاغت چو با, بلاغت چو با خد... جای بلاقت چه با خطترین آاددی به گفتار و معنی نیازایدی مثلا همچی چیزی به خط آن نویسد که دلخواتر به لفظ آن گت که کوتاهتر این کلام در حقیقت گفتار بزرگمه توند بزرگ ماست که ف توصف کرده نه ابدا چنین چیزی در شنامه نیست مثلا یک بخشی هستش که وقتی گردین میخواد بیژن رو تشویر کنه که به مرز توران بره و مثلا به جشنگاه منیجه بره فردوسی با این دو بیت توصیف کرده این جشنگاه رو پری چهره بینی همین دهشت و کوه به هر سو به شادی نشسته گروه همه رخ پر از گل همه چشم خواب همه لب پر از می ای به بوی از این چی میشه دیگه اون تا اون چیزی که مهم هست که هیچ کس توجه نکرده وقتی که بر افتادن. یه عبارته که دو به راه دراز یکی آزبیشه یکی ساز هیچ کس تا به حال معنی این رو درک نکرده آز در فرهنگ ایران آز نیاز آز وقتی زیاد بشه تبدیل به نیاز میشه نیاز زیاد تبدیل به رشک میشه یعنی حسد رشک زیاد بشه تبدیل به کین میشه کین بسیار بشه تبدیل به خشم میشه خشم هم دارنده درفش خونینه و تمام جنگ های جهان از اینجا سرچشمه میگیره یعنی با کاری کرد که آ... نیاز نباشه. سر مایه اینا نیازه دومیش آز و چهارمیش کینه ببینید نوشته یکی آز میشه یکی آز پیشه یکی کینه صد یعنی از اون دو از اون پنج دیوی که جهان رو با آشوب میکشه دو تاش هم راه ایناست یعنی کافیه که یک واقعی خیلی بد پیش بیاد نه فردوسی چنین نبود و خیلی خیلی ساده و روان و اون اندوزیک بود بگه به لفظ اون گزینه است و نمیدونم حالا چقدر شا... موافقید با این نظر که فردوسی با شخصیت های شاهنامه زندگی کرده باهاشون نفس کشیده درسته, لحظه ب... درسته. ب... یعنی این شناختی که فردوسی از این شخصیت‌ها داره میشون دنده اینه که این شناختی شناخت سطحی و مثلا حاکی از مطالعه فردوسی نیست حاکی از زندگی کردن فردوسی با شخصی به نام رستم با شخصی به نام سهراب یکی از ویژگی‌های هنرمندان بزرگ اینه که بر خلاف روانشناسان که متقاعدند تفرق شخصیت چند شخصیتی بودن یک بیماری تلقی میشه در مورد فردوسی تبدیل به یک هنر والا شده که تونسته چندین شخصیت باشه در حقیقت همه اینها به نوعی خود فردوسیه که در درون فردوسی درست پرورش... فردوسی با همه این قهرمانانون زیسته زیسته زندگی فردوسی. کرده یک داستانی رو من شنیدم در مورد اونور دوبالزاک داشت کتاب بابا رو مینویش و یک از دوستانش اومد دید به شدت داره گریه میکنه بالزاق بهش گفت چی شده چرا گریه میکنی گفت باباگوریو مرد گفت اه خدا بیا مرزاتش کی بود باباگوریو خب یک از شخصیت های بود داستان بود مرد گفت خودت نویسندش بودی چرا کشش گفت چاره ای نبود داستان و تقدیر قصه تقدیر داستان به اینجا ختم شد که باباگوریو باید میمرد و در مورد فردوسی هم در حقیقت همین شخصیت ها دارن فردوسی رو هدایت میکنن به اون نقطه اصاسی روانشاد پدرم من که نمایشنامه مینوشت در اون زمان های من خودم به چشم خودم بزم که وقتی یکی از این نمایشنامه ها رو میخوند و میگیریست یعنی باید باید زندگی کرد با اینا زندگی کرد فردوسی بیش از هر کس روانش آمیخته با جان و روانه پهلوانان منم شما که داشتید میخوندید شاهنامه رو رستم و سهراب رو چنوندگان حالا خب شاهد چهره شما نیستن من دیدم واقعا به شدت متاثر میشید به خصوص اون بخشهایی که رستم و سهراب با هم درگیر میشن و اون تقدیر و حالا شوم بقیم میخوره من دیدم عشق در چشمای شما حلقه زد و برای من از این نظر جالب بود که شما بارها و بارها و بارها رو سمسوعراب رو خوندی یعنی سالهای زاد سال. و باز هم بعد از این همه مدت میخونید متاثر میشید و این واقعا نشونه دهنده اینه که شما هم عمیقا با شاهنامه زندگی کردید کاملا و پیداست و در مورد پیامک ها استاد دیگه به پیامک به اصطلاح قابل ارزی وجود نداره سوال ها پراکنده است و چندان مثلا یکی از دوستان پرسیدن در مورد تپه یهیا تو توضیح بدی حالا در کرمان نمیدونم چه نسبتی داره با ولی ابن توری من میگم در تپه ما... بله بس. نمونه های خط بسیار خطی‌تر از خط خوزستان پیدا شده و متأ این همین شناسان غربی بلافاصله به اون بودن پروتو ایلامی یعنی میخوام به چشم به ایلام ایلام بگم که نام منو برای که خود اینجا خوزستانه امه. برای که خوزستان رو نگم جزی از ایرانه امه. نام بابلی اونو که اونا میگفتن امه. ایلام برای اینجا انتخاب کردن تا بعد با این هم نوشتن تا اینکه تو به کلی عوض بشه یک سری که 3400 سال توی خیر بوده پیدا کردن که این سیار شده بر اساس این سر گفتن اینا ایلامیا سیاپوس بودن خب ببینید اینا کارهایی که غربیا برامو کردن و حالا برای اینکه که تب یهران،, یهران و تب تل ابلیس هم در کرمان پیدا شد اونان هم به ایلام با این میگن که پروژه ایلامی اتفاقا دو سال پیش آقای دکتر حساری در پیشوای برامین صد لوهه گلی خط پنج هزار ساله پیدا کرده بعد که دو سه ماه پیش من رو دیدم ایشون گفت اضافه شده پنج هزار سال باز پروفسور گرت کروپ که دوست منم هست و آلمانیه هست به آقای دکتر سوئی گفته بگین اینا پروتو پروتئولام یعنی چی وقتی که 500 سال پیش اصلا کشوری به نام ایلام که اونا میگن و با این نویسن نبوده چرا ما ببینیم پروتئولامه چرا نگیم خط ایرانی ببین اینا همه کارایی ای کروپاییو برامون کنه و ما بد سه وزیری به کارشون در هر صورت خط 500 ساله در پیش وارومی پیدا شد. و خط 6000 سلام که در جیوف پیدا شده آقای دکتر مجزیزت پیدا کرد و داره نشون میده که قط پیشتر سومر در ایران بوده اون چیزی که کتاب‌های ما به ویژه شاهنامه داره بیان بکنه استاد یه پرسشی که شاید باز همین تکراری باشه و در پیام های هم در چند مورد به این پرسش اشاره شده اینه که آیا واقعا شاهنامه استوره هست یا نیست؟ اصلا ما استوره نداریم استوره به و داستان که یونانیان گفتند به نظر من به خواب یک دیوانه مست ممکنه بیاده اون طرق که اونا گفتن ما اسطوره نداریم ما اون که داریم تاریخ و اون بخش هایی که اروپاییان برای ما رقم زدن که اسطوره است هم اتفاقا در برگیرندهی هفت خانه بی... رستن نه خانه نه پیشه اونو جزو پهلوانان آوردن وجوز دوران پهلوانی رو پیشترش اسطوره ای. همون قسمت که بهترین تاریخ بشر. یعنی شما می در زمان جمشید دیوار ساخته میشه. هندسه و اندازه پیدا میشه. ناو پیدا میشه. دارو پیدا میشه. پزشکی پیدا میشه. بهداشت پیدا میشه، علایب بر پزشکی. اینا کجاش اسطوره است؟ در حالی که ها به ما رقم زدن این اصول. برای چی؟ برای که میخوان اسطوره های دروغه یونان رو خودشو موجه جلوه بدن. در اینجا وقتی که صحبت از دیف میشه، نگو دیپه. دیپ دیف یعنی نوشتن و این از واژه دیپ دیپیر دبیر و دفتر و دیوان همه اینا درست شد واژه دیپ تبدیل شد به دوب در زبان سومری تبدیل شد به ادب در زبان عربی این ریشه دیپ که این خونده میشه دیو خب اینا اسطوره نیست اسطوره متعلق به خود است. که هنوزم تو دانشگاه هاشون همون ها رو میخورن با با اونها نمرت اسطوره بار منفی دهن بله اسطوره‌های یونانی دیگه می‌بینید دیگه ما در حال که هرچی هست تاریخ خب دوستان کم کم به لحظه های پایانی برنامه پنجره های رو به مهتاب رسیدیم که واقعا من دلم نمیخواست خیلی خوب به سرعت تموم شد زمان گذشت اما این هدایتی هم همین بود گفتم زود تموم سری خب حالا ان الله که در هفته های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود برای بله یک موسیقی می و بعد برای خداحافظی باز خدمت شما خواهیم بود. کاران برنامه امشب تهیه کننده محمد رضا حاجی الهیدری سردبیر حمید رضا هدایتی را صدا برداران آقایان تاهری و الهیدری ارتباطات آقایان فروزنده و حسینی هماهنگی خانم مرجان آبادین بنده هم سعید یوسف نیا هستم که توفیق خدمتگذاری رو امشب داشتم شبتون بخیر تا برنامه دیگه خدا یار و دارد بدرود و شاک باشد